هران که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد گرد حواست که معشوق نکسلت پیمان نگاه دار سر رشتتا نگه دارد سبا بران سر زلفر دل مرا بینی زروی لطف بگویش که جا نگه دارد چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیز از خدا نگه دارد؟ سر و ذ ودللوجانم فدای ان یاری که حق صحبت مهرو و ف نگه دارد؟ عبار راه گگذارد کجاست؟ تا حافظ به یادگار ننسیم سبا نگه دارد؟